سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد هرش به زندان کردم من به سرمنزل انقا نه خود بردم را قطع این مرحله با مرق سلیمان کردم سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان که من این خانه به سودای تو ویران کردم توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به کردم در خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن ظلف پریشان کردم نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست آن چه سلطان از الگفت بکن آن کردم دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع گرچه دربانی وانی میخانه فراوان کردم اینکه پیران سرم صحبت یوسف بنواخت اجر صبر است که در کلبه احزان کردم صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم گر به دیوان قزل صدر نشینم چه عجب سالها بندگی صاحب دیوان کردم